بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین السلام و السلام على اشرف الانبیای و سید المنسلین و صحبی اجمعین اما بعد ما در دل دفت گذشته بحث براهین عدلی وجود خدا را داشتیم اون عدلی که خداوند گذاشته داشته تا اینکه ما بهش پی بي ببریم از بحث شهادت و گواه خودش، از بحث شهادت و پیامبران پیانبران شهادت و گواه فرشتیوان و که خداوند در این آیه خلاصش می‌گه شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما من القصد که در این آیه به طور خلاصه‌ خداوند شهادت خودش رو و خودش نشن میگه و همچنین شهادت فرشتگان و شهادت علما و بحث شهادت رو خلاصا شد بحث حس انسان بود که انسان می‌بینه خداوند دعوتش رو دعاش رو قبول می‌کنه بحث معجزات پیامبران بود که انسان میبینه هنوز نشانه هاش مثل بحث نصد شدن ماهی که هنوز آثار اون اشاره رسول الله آثار اون نصد شدن هم هست باقی و بحث دلالت خلق خداوند من رو کردیم نشانه هایی که هست از بحث خورشید و بحث ماه حساب کتاب دقیقش و همچین این مخلوقات دیگری که خدا در قرآن ذکرش کرده و این منشه یعنی اللہ یسبیح و حمد رب تسبیح موجودات و مخلوقات از جمادات و از نمیدونم زند اون چیزهایی از موجود فکر زنده اند از موجودات زنده که ذکر خدا رو دارند الا از اطاعت خدا را و پروردگار یا مواحظ تراتر از این بحث و کردیم اون شنیدنش و اون دیدنش که علما متعجب باقی موندن که چطور میشنند چطور باقی میمونه توطور میشه که وقتی افتی یک کعبه را به یک لیوانی میچست کنی بعد از مدتی میبینی که شکل اون کعبه و شکل اون انسان‌هایی که توافت میکنن با خودش میگیره وقتی ذکر خدا بود و شنیدن اون آب که گفتیم دری خونه وقتی که آبی رو میذاری قرآنی گذاشته میشه اون آب خراب نمی و اون میبینی که در اونجا گذاشته میشه فاسب نمیکنه. لیکن همون اگر در, در اتاقی گذاشته بیشه با یک این و یا بالفرض با یک نه نهنجار اون آب خراب میکنه اون میوه خراب میکنه تجرون میکنه خود این مسائلی که ما در درس گذاشته زکتش کردیم میبینه مسائلی هست که آلا یا عقل بشر میاد مشخص میکنه یا یعنی میاد یک نتیجهی میرسه در وجود خدابند و یا اینکه خداوند سرحکن در قرآن, در قرآن میخواد عقل ما را بیدار بکنه و سرحکن میاد در قرآن مثال میزنه برای اینکه که ما عقل خودمون رو به ببریم ما فرقمون با موجودات دیگر اینه که ما عقل داریم ما فهده ما میتونیم درگ بکنیم این چیزی که هست از بدیهیاته هر چیزی نیاز به سازندهی داره حالا چه موبایله چه پیراهنه چه دفتر نیاز به یک سازندهی داره آیا میشه که انسان بدون سازنده باشه؟ خیر نمیتونه بدون سازنده باشه انسان غیر ممکنه که عقلش بپذیر چیزی بدون سازنده باشه و همینی که خداوند میگه ام خلقون من غیر شیعن ام همو الخالقون آیا از پوچ و بیهوده خلقت شدن؟ یا این کسا خودشو خالق یا اینکه از هیچ خلقت شدی اصلا طبیعت و یا این که خودت خالق خود دی. احتمال اول اگر خودت خالق خود دی. یا بباشید اگر احتمال اول اگر که از هیچی ساخته شدی هیچ همینطوری سوری طبیعتن به وجود خب این نظام و این تنظیم و این چرخش و دوران انسان میخوره بیرون میاد دتباهی که وارش کلیه هست مرده هست، قلب چرا قلب عمل مرده انجام نمیده؟ این تنظیماتی که در جسم انسان در جسم مرچه چطور میشه که طبیعت خودش همینطوره این چیز دقیق را خلقه بگنه میلیون ها سل، سلول در روز میمیرن دوباره سلولی چیز دیگری جاش میاد میلیاردها سلول سلونی در فقط در چشم سنهاست خب چطوره که این چشم میاد نور رو تشخیص میده میاد سلان رو تشخیص میده؟ طب این همه از چیزها و عبور دقیقه کرشید ما گفتیم اگر یک ثانیه از بدلاش خارج بشه انقلابی در کهکشان کهکشان راه شیری ایجاد می‌کنه. یک ثانیه آن یک ثانیه اگر خورشید بیسته انقلابی انفجارات عظیمی در کهکشان خودمون ایجاد می شه. و خودشون هم اقرار می کند اینو عقلانی‌هایی هایی که هستنالا از سفاره شناسان اقرار میکنن که نظام هستی نظام آفرینش نظام راه شیری خودمون خود منظوم شنسی. جای جایی تحجبه که این نظام با این دقت با این عظمت چطور سفری میشه و چطور در جریانه با این عظمت با این سنگین مثلا بر نظر بگیرید اگر این توپی را در آسمون بخوام بگیریم و نگهش بداریم چقدر زحمته یک توپ را با مغناطیسی نمیدم بخواد مثلا توپ به بین زمین و بین نمیدادم ببین یک جسم دیگریم این سر به سر نگهش بداریم. خب خیلی زحمت برای ما با خیلی روش کار بکنیم اون توپ را از نغنایدادیم مرقنای پایین و مغناسیسی بالا بود که بخوام یک تازن ایجاد بکنیم که چی؟ که اون توپ بسط کار دیید درسته یا بلفرد یک بازنه کنونش توش پر از هوا بکنیم که بره بالا مثلا با سری اکسید فرش بکنیم بخواد مثلا بلفرد یا با هیدروژن که بخواد مثلا بلفرد بین سخ و زمین مثلا بلفرد بیت در فاته ده خیلی سخته کنترلش نگه داشتنش نگه داشتنش خیلی سخته خب چطوره که این زمین با این همه عظمت خورشی با این همه عظمت ایستاده سرفش چرا نمی در از دیگه روی ستون که نیست در این فضا چطور ایستاده؟ همینطوری؟ هم خلقونه غیره شدید؟ بیهوده همینطوری؟ اما مرخالفون یا خودش خالفه اگر خودش خالفه کجاست از خلقش چی آفری در زنی این مثال ها هست که خداوند میزنه بیخواد اینو بگه که شما همه دوجود اومدید شما به وجود آورنده نیستید، وجود آورنده کسی دیگری هست کسی که میخواد چیزی رو به وجود بیاره باید اراده ما داشته باشه وقتی که ما به وجود اومدیم بگям از خودمون اراده داشتیم قصد کردیم به خودمون به وجود بیاریم مثب پس من به وجود اومدم قصد داشتم؟ اراده داشتم؟ این اراده از کجا اومد کجاست؟ چرا بیشتر از خودم نمیتونم کل قد بکنم؟ بحث ارازه میشه، بحث قدرت میشه آیا انسان خودش قبل از این الان به وجود بیاد قدرتی ای داشته؟ این مثال ها مثال هایی هست که خدا را در قرآن میزنه مثال هایی هست که عقض بشری باید بهش پاسخ بده چرا انسان خودش همینطوری به خودش اجازه میده که وجود خودمان را انکار بکنه؟ خوصا این مخلوق ضعیف این مخلوق نیاز منده. حالا چه نیازمند به مخلوقاتی دیگر چه نیاز؟ ب... خیر ممکنه که مخلوق بدون نیاز باشه در بیزنی کوره زمین اگر نیازمندی اگر احساس نیاز می این آخر این نیازها تو رو به کجا می شده؟ آیا بندگان میتونن نیازت رو براورده بکنن؟ نمی تونن رو براورده بکنن آخرش باید برسید به قدرت لا قدرت بینهایت اراده بینهایت آخرش باید به با هم برسی نتیجه کار همونه بخاطر همین مثال هایی که زده میشه حالا من این سه تا بند را میگم تا اینکه خوب مسئله رو درک بکنید ما برای استدلالمون برای یک شخصی دل وجود خدا را انکار میکنه، یک شخص کمونیست کمونیست کسیست که و رفت بوجود خدا را کلا انکار میکنه، و میگه که مخلوقات خودشون را بوجود و وجود الله را این کار میکنه ما برای رسیدن به خدا با اینشه سه تا مرحله ت بود وجود اساس سه حالت خارجی وجود کل وجود از سه حالت خارجی یا اینکه خودشون خودشون خلقت کرده یا اینکه بدون پروردگار اصلا خللقت شدن طبیعت از همجور وجود و یا اینکه که پروردگاری و موجیلی داره. کسی داره که خلقتش کرده. احتمال اول رو بگم برسیش خودش خودش آفریده باشه. احتمال اول خودش خودش آفریده باشه. چه موقع میتونه انسان خودش رو بیافرینه آفریده؟ چه موقع بالفرد ما میتونیم چیزی دیگر رو بی ایجاد بکنیم؟ الا بحث آفرینش رو ما داریم بگیم به عنوان لغویش اصلا که آفرینش به معنی خلق انسان خلق نمیکنه انسان می سازه ساختنه شما شما که مابیدین چیزی رو بسازید آیا میشه بدون اراده این موبایل به وجود بیاد این مسجد وجود بیاد بدون آفرین آیا میتونیم یا میشه که این چراغ بدون ساختن ایجاد بشه بدون برق و بدون نمیدونم شیشه و بدونه نمیدنم فلان و فلان آیا میشه این خود به خود به کار بیفته؟ اگر خود به خود به کار بیفته چرا این همه زحمت میکشیم؟ این همه جون میکنیم، این اختراب بکنم اون بکنم، اینقدر درس بکنم فلان بکنم، ریاضی و فیزیک و این علوم برای چی هست پس غیر ممکنه که مخلوقات خودشون رو به وجود آورد به وجود بیاورند یا به وجود آورده باشند چرا؟ چون اراده ما قبل ندارن چون اراده ما قبل ندارن چیزی که باید سخف باشه باید اراده داشته باشه که بتونی چیزی بسازه پس چون اراده ما قبل نداشتن چون اراده قبل چیزی وجودو خود نداشتن پس نمیتونن خودشون رو به وجود بیارن لازمه ای ایجاد چیه؟ اراده پس چون اراده نبوده پس خلقی هم از ایشان ایجاد نشده سازشی از اینها ایجاد نشده احتمال دوم که خودش همینطوری به وجود اومده باشه طبیعتا همینطوری به وجود اومده خالقی نیست اولی خودش خالقه دومی اصلا خالقی نیست اولی خودش خالده پس حالت خالده, خالده میگفیم یا خودش خلق کرده یا سه خالده نداره یا اینکه خالده پروردگار یک حالا بحث بازم بازم اینکه پروردگار یک بازم روی بحث میکنیم لیکن حالا بحث دوم رو که بدون خالق ایجاد شده باشه که این بحثش هم میکنه کمی خلب داشتیم این مثال هایی که ما در خلق داریم که در قرآن زده شده. وقت خورشید و وقت ما حساب, حساب و کتاب های دقیقش نمیشه این نظام دقیق این آفرینش دقیق بدون خالق باشه میشه یا نمیشه نمیشه این نظام آفرنش دقیق این چشم با این دید،, دید، این گوش با این شنوایی نمیشه بدون خالق باشه یعنی این بدهیات در بحث این مثال هایی که خداوند میزنه این مثال هایی که هست در خود قرآن در بحث مثلا جنین میگه که در چه مراحض عبور میکنه مرحله اول فلان، مرحله مضغب و فلان و معلقه و فلان در اون موقعی که مثلا به هیچ میکروسکوپی و ایچه و, و فلان و فلان و فلان و فلان نبود چطور خداوند میاد این مثال ها یا این آفرینش انسان با این دقتش در رحم مادر رو ذکر می‌کنه در قرآن کی دیده میشه این شعر باشه در قرآن این مراحل خلق انسان شعر این مثلا خداون همینطوری آورده یا اینکه نه اینها اقرار از خداوند که غیر از او کسی نمیتونه این کارها رو انجام بده. قبل از اینکه علم بشری اون حد برسد که بتونه تشخیص بده که این مراحل حقته. باخت همین میرخلع فرزش کن مسلمه شده بعد اینکه کشف کرده این مراحل مراحل خلق انسان. اول گوشت گوشت آویزون میشه بعد از آویزون فلان میشه در پشت نمیدونم سه تا یا چهار تا فرده قرار داره شکمو نمیدونم فلان و فلان و فلان همه این چیزا در قرآن بیان شده در چه مراحل جنین عبور میکنه؟ این وقتی که ما این چین دقتی داریم در قرآن در وقت چطور میتونه که بدون آفریدگار باشه پس کیه این شخصی که به ما خبر داده با یعنی با این همه دقت با این همه نمیدونم ریزه کاری ها اونم 1400 سال پیش بدونی که مثلا دزگاهی باشه بدونی که مثلا بلفرد ما بیام یک تشیر حضا شده باشیم یک نمیدونم پزشکی داشته باشیم که به فرد بیان یک شفی همسرش رو فدا بکنه بیاد زیر دست پزشکان بله پاره بکنیم که ببینیدن یک ماهگی اینطوری ای دو ماهگی اینطوری به این صورته ای ای ای آیا کسی وجوده که این کاري بکنه هیچ کس نمی کنه هیچ کس نمی همسرش رو فدا بکنه که ببینید در ماه اول چطوره در جایی بوده 10400 1400, 1400 ساله پیش نبوده پس هم آخرش به همین میرسید که. غیره ممکن که بیتونه خالق باشی آخر کار راه چاره من چیست باید تروردگار باشی باید خالق باشی آفریدگار باشی خای این آفریدگارمون چند تا احتمال هست در این آفریدگار این آفریدگار ما بازم من تا احتمال میدم پسلا بسلا رسید با آفریدگار باید باشه. خودمون که آفریدگار درسته؟ بدون آفریدگار هم نمیتونی باشه. حالا باید آفریدگار باشه. این آفریدگار بودن سه حالت داره. یا اینکه که دو تا با هم هر دو تا خیلق خودشون داره. یا اینکه دو تا بودن سه تا بودن یکی دیگری ها را شکست داده احتمال اتبا خودش تنها تا کسی نبوده که باهاش بیا مواردده بکنه الان به پروردگار رسید درست درسته؟ یا کسی باهاش یا کسی باهاش نیست و کسی هم نبوده که باهاش باشه این بدیهیات عقلی است این بدیهیات عقلی است. نیاز به دلیل از قرآن نداریم لیکن با این وجود خداوند به خاطر این عقل پلوم شده یه ما به کار بیفته، از این تاریکی از این سیاهی بیرون بیاد بدون که پروردگار یک تا و خالق یک تا یکیه کسی چه خدا نیست میخواد از این تاریکی ما را بیرون بیاره و بهم النتيجة آخر مر وبراتونه وما خلق الجن بخط ونفر ونفر ونفر ونفر ونفر من إنسان ليعبدون عبدون من قطعه همين في آخر خط همين ترخف همين فرهم خط همون مر وبراتونه كمان هم مستخدم بود اتاعت بشان، من هم كمان هم بفرات نا دنياته نا فلانت نا فلانت فضالة من كثير مطال مزانه ما اتخذ الله من ولده ما اتخذ الله من ولده قل هو الله أحد، الله سمد لم يلد و لم یولد فرزندی نداره چه کسی یوزو فرزند داره انسان مخلوق پروردگار اگر فرزندی داشت ای نصرایان ای کسانی که ادعای تبعیت از مسیح عیسی مسیح میکنید شما که ادعا دارید عیسی فرزند خداست چطور اجازه میدید و عقل خودتون که خداتون اولا انسان باشه انسان عاجزی که میاد ادرار و مسئول میکنه و میخواد، چطور قبول می که این خداتون بالا دار کشته روشید فوشه به خدا این که بگید این که ما بگیم خدا داره فوشه به خدا از فوش هم بسته دل یک شخصی راستی کچه که آبه میبینه بگی این فردم در ازدواج نکرده بهش برمی کنه نمیخوره گه من دنا کردم گه من فلان کردم خود به خودش میگه نمیگه برمی کنه برید نمیخورد این فردم فردم در توسته برمی نمی‌خوره. نمیخورد فرشت یا خوش نیست، فرشت یا ازدواج کردی؟ و یا زنا کردی، از این دو خالت خارج حالا ازدواج نکردید، سنی ندارید میبونی یک احتمال، زنا کردی، فکر این فرزن میتونی آمده شد کیم یا اتهام یا واقعیت، از این دو خالت هم خارج الان این تهمته با من الله من ولک اول اینکه غیر ممکنه که من فرزن داشته باشم و ما كان معه من اله پروردگاری هم همراهش نبود همراهش نبود میدونی چرا من خودم از خودم فرزندی به دنیا نیاوردم من خودم خدای دیگری خلق نکردم شما این اصرار که ادعا دارید اگر به خداوند خدای دیگه‌ای ساخته که ایسا باشه مو باید کدوم ایک اونگه بردی؟ کدوم ایک کدوم این کدوم این کدوم با فرد ایم فرد بردید آخا خدا درست؟ انتهای هر کم یک خدا این احتمال بزنیم کنار برین به این قسمت و ما کان معفل من اله کسی هم همراه خدا نبوده چرا؟ اذا اگر کسی همراه هم ما بگید اذا لدهبه کلو اله اذا لذهب اگر فروردگار چند بود اذا لذهب كله الى بما خلق پس هر پروردگاری میاد مستقل میشد با خلقش و لعلا بعضهم على بعض و خود یکی بعد دیگری برتری پیدا میکرد حالا نگاه کنید همون این ستا احتمالاتی که ما گفتیم جواب قاطع میده پروردگار این حال که هست درسته؟ خب حالا همراه این پروردگار یک پروردگار دیگری هست فرض باشه یک پروردگار دیگری باشه خب اگر هست مخلوقاتش کجان؟ اگر هست چی آفریده؟ کدام پیانبر فرستاده خلقش کجاست؟ ما یک پروردگار داریم که ادعا داره پرشید و من آفریدم آسمون و زمین و من آفریدم هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسوّاهن سبعه موارد حمس اخبار میگه به کی به یک پروردگار 24000 پیغمبر هم گفته به یک پروردگار کوجو نیست این پروردگار که این نعمت بر سر ما گذاشته و این قران رو به ما شناخته آیا غیر از این پروردگار، پروردگار دیگری دیدیم که دعو بکنه ندیدیم، پس خود به خود با یا بگوییم به هم یکی بیشی. درسته؟ خود به خود با به هم یکی بیشی. خب، یا اینکه احتمال دوم دو تا یا سه تا یا چهار تا بودن، یکی دیگری ها غلبه کرده. یکی بعد دیگری ها هرچند که در احتمال اول که دو تا با هم داشته باشن غیر ممکنه چون خدا میگه اذن لا کل كل به بما قد و لا على بعضهم على بعض یکی با یکی برتری پیدا میکنه نظام به هم نمیخوره این من اینطوری میافرینم من اینطوری این شرکت موبایل این میگه من اینطوری میسازم این میگه من اینطوری هر کدوم با دیگری رقابت میکنه آیا رقابتی شما دیدی رقابت اجهز کجا؟ میگه اگر دو تا خالق بود رقابت پیش می اومد و اگر رقابت پیش می اومد یکی شکست می خورد و یکی بر دیگری برتری پیدا میکرد. پس احتمال دوم دو تا تا خدا بودن یکی بر همه غلبه کرده آخرش چی میشه؟ آخرش خدای پیدا میکنه باید یکی باشه. آخرش خدایی که شکست میخوره خدایی خدایی که از بد بره خدا نیست آخرش به همون یکی که غیر از خدا کسی دیگر نبوده و نخواهد بود پروردگار یکی است. یک شخصی با خودش میگه یعنی من خب تو ذهنم میاد من خودم مادرم به وجود برده مادرم فلان پدر مادر بودن فلان بود خب آخر آخر این این, این, این چیزی که در ذهنم چاید یک شخصی به خودش میگه چرا پس این مثال ها تو ذهنم میاد یعنی شکیه مثلا چرا من در پروردگارم شک می کنم خدا من اگر این شک و تردید در ذهنت به خاطر اینی که احساس نیاز پروردگار بکنی اینی که تو بدونی هر مخلوق نیاز بشی زکر و اونسا داره مرز و زن داره بوجدابرنده می میخواد، الا الله واحده قلومه الله احده لیکن همه مخلوقات از همین سلول و پروتون و نوترون هم میترخن. بار مثبت و بار منفی از جامل و از غیر جامل همه این مخلوقات خدا مثبت منفی دارن ندارن از درخ بگیر از همین تخت بگیر و همین همه چیزها. ها خود منفی مثبت دارن ندارن ذکر آنسا دارن ندارن؟ دارن مرد و زن دارن نیازمندن لیک پروردگار حاله و غیر از این پروردگار ما کسی ندیدیم که دعا بکنه که ما را آفریده. اافرادی که هستند باید باشه غیر از این اافرادی اافرادی دیگری نداشتیم. از باید همینا رو و غیر از دیگر مستحق عبودیت نیست نعلی و نه محمد و نه غیر از محمد صلی الله علیه و آله همه اینها مخلوقات هستند کما میشه تلویزیون و غیر تلویزیون نمیدونم امامو نمیدونم کرسی دا اتمون روی کف دست نشونه میچرخونن و فلان میکنن و نمیدونم یا پیامبر خود به دنیاست و نمیدونم اگر تو نبودی مخلوقاتو خلقت نمیکردم و قولو بذرتيهام بران خداونده لعن الله یهود و, نصار. و نصارا تخلق قبور انبه لعن الله لست تدون كم اتت نصارى عيسى بن مريم لعنت بكم بر یهود و نصارا که براي خدا فرزندي قائل شدند اينها گفتن عزيز فرزند خداست گفتن ايزا فرزند خداست لعنت جون ميگنه اين چيني پوشهاي رو به خدا میده شما راضی میشیدی اين چيني پوشه داده بشه اگر ميدونيد اين پوشه به خدا من ده چرا باز جهاد نميكنين چرا باز بیدار نميشيد چرا جلو اين پوشه ها نميريد متطلبات اون تا كيف خوابن چرا خداستم دفاعا نمی کنید چرا باهاشون نفس برخاست میکنید چرا مثل اونها لباس میپوشید همین ها جای علامات اصفهام غیرت مسلمانان کجاست یا اینکه میگن نمیدونم علی علم میدونه یا میدونه نمیدونم پیامبر فلان میدونه فلان میدونه خود رسول الله عمید. لا تسرون کما اتت النصارى من نکنید، اسرن نکنید در درحکهما همونطور که نصرا قلوب در عیدا به خداییش رسوندن چرا به غیرت ما برنگی وقتی که یک شخص میاد جلوبمون این چیلی فرشوی را به خدامون میده علناً میاد در حق رسول <سؤال> الله غلوب میکنه و از بندگیش انما انا الله. رسولی که بگه من بنده خدام ما بیام این بندگی را به خدایی برسولیم بعد بیا نسبت بدیم احادیث به رسول الله صلی علیه و اگر تو نگودی همه همه مخلوقات را خلقت نمیکنم و هرچی خلقت کردم برای تو بوده که مناقض آیات طریح قرآنی و ما خلقت جن و الانس إلا من جن و انسا فقط برای خلقت خود برای عبدات خودم خلقت کردم نه برای محمد نه برای غیر محمد این همه فوشه به خود چه از ضرور دادن به بسر رسول الله صلی الله علیه و سلم و چه از خیبیات و اینچینین نمیدونم فلان امام علم غیب داره فلان فلان نمیدونم فلان داره قل لو كنت اعلم الخير من الخير و ما علم غیب می و خدا میشد اگه علم غیب داشتم به محمد بود اگر علم غیب داشتم ضرری به از من کار خوب انجام میدادم و ما ما ما ضرری هم به من چرا چرا چرا در تپش دل لرزش اینجوری میگه بعد نهودا چرا در اون شدت امرت خیرت اولات برای دین خدا دو من اهمیات توحید خداوند ما چقدر خدا رو شناخت این همه بدیهیات چقدر با این آیات با این ریزی چقدر دقت کردیم در این آیه با این دقتش ما اتخذ الله من ولدا و كان معه من اله اذا ذهب كل اله بما خلق ولا على بعضه على بعض چقدر این آیه تفکر کردید ای خدا اگر قراره که هیچ خدایی نباشه اگر قراره که تو فقط باشی چرا پس مردم از تو دورن پس چرا ما برای حقت این دفاع نمی کنیم و خونمونو رو فدا نمی کنیم؟ پس چرا ما نمی کوشیم کوشش نمی آیا راضی میشیم راضی نمیشیم اگر راضی نشیم پس چرا جهنم دارین کشیم چرا جون نمی کنیم برای خدا این خدایی که میبینید، این چیلین افتراعات و دروق آبایش این همه مسائلی که هست. این همه نظریاتی که ما گفتیم. آخرش خدا اینو میخواد برس ای بندگان، زحمت بکشید. ای بندگان، به غیرتتون بر بخورد. ای بندگان، مال من باشید. مال دنیاتون نباشید. آخر و اول، فقط خدا رو داشته باشید. این خلاصه بحث امروزمون صحبت امروزمون رو خاتمی میدین با مناظری موسی و فرعون. بعد كفرعون يجب وما ربكم يا موسى قصد موسى وخارم قرم وما ربكم هل بعد جوال تبقية موسى جنة ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ربوناللذی اعفا کلشه این خلقهوز و مهدا پر بردگار ما کسی است که خلقه کرد بعد هدایتش کرد در یک مسیر قرارش داد تو چی کردی تو بیچی نداری و اگر مردی بلفرد چی نینا که انسانی که این همه ادعا داره اگر مردی یک صاحب ردیدی کسی که داد داره خب اگر مردی بیا با گوشت ببین با چشمت نمی اینجوری اگر مهدی هست اگر مهدی آسمان زمین در در دستشه پس بذار زمینم مال خودش باشه و همه مردم و کفار و فلان رو نمیدونم فلانو بکشه اگر زمین در دست خودشه اگر این چنین قدرت داره علم غیب داره پس بیاد مخالفین خودش از زمین مرد بیاد اگر مرد بیاد آخرش همینه اگه خدا میخواد. بگه هیچ کس نه علم قیبون داره. نه نمیتونه خلق رو داره. نمیتونه چیزی رو بیافرینه. هیچی. آخرش خداوند بنده و یک تاس و ما نیاز منده خودش به تنهایی هستیم. خب این خلاقه یه درسته درس, این درس آینده من انشاءالله. بحث فسد. و نقشش در اعتراف به وجود خداوند فتفند و نقش آن در اعتراف به وجود خداوند و یا پی بردن به وجود خداوند خیلی ها انفار می کند از اخوانی ها این مسئله خلافی را چندین تندین جلسا باش باشید لیکن اشتالا سعی می که آنچنان که شایسته این بحث هست سعی بکنید که عداش بکنیم و در اینجامت رعیش بکنید سبحانه, سبحانه کنید